جلسه پنجه و ششم از قواعد فقه و سیاسه و الحکومه اول خوردار 1401 محصر آموزشالی امام رضا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و سلالله علا سیدنا و نبینا عبقاص محمد و اهل احل بیت طاهرین المعصومین سی مبقیت الله في العرضی روحی و عربه العالمين له فکر با تحکل بر خدای متعال و توسط به پیامبر گرامی و احنوهی تحتار علیه ما سلام بحثمون رو آغاز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم به نظرم پس اگر برگردیم به اون چارچوب بحثمون که بعد برسیم به بحث حفظ آبروی فرد دعا روی نظام و این مقوله اخیره که بحث جمعیته از یک جایی دیگه من اول شروع میکنم تا بعد به این تظاهام دعا به هم ببینیم چی طور میشه به پردازیم ما الان حفظ تنقیق قاعده آمد. مسلحت تقدیم مسلحت نفس بر مسلحت ارز را داشتیم این رو در نظر بگیریم که یک جایی مثلا ببینید در معیار کلی شوق... گفتیم شقوق مختلف داره اما در حکمش آیا چون بحث جانه حفظ جان خلاصه چه نسبتی داره حفظ جان مسلمان مسلمان بر حفظ آب روی اون میتوانه مقدم شه رست به این به چه معنا؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، یک کسی زنا کرده. آیا آیا حق داره که خودش رو بکشه برای که حفظ آبرو بکنه؟ خیر. برای اساس فرد مسلمان مثلا در واقع بگیم مبتلا به گناه زنا یا لواط نمیتونه به عنوان حفظ آب روی خود دست به خودکشی بزنه خب پس اینجا الان چرا, چرا که حفظ جان اهمیتی دارد که فراتر از در واقع سایر موارده به طور نمونه شما دیدید تو این بحث های جبهه جنگ و اثارت گاهی اوقات فیلم میسازن یه بحث اصلا فراسرزمینی است فرا, فرا اسلامی است یعنی کسی که خلاصه دند مثلا یه زنی در نتیجه هیچ زنی حق ندارد برای حفظ در واقع بگیم اون آبرو و شن خودش از تجاوز برای پرهیز از افتادن در دام تجاوز خلاصه تجاوز چه کار کنه؟ دست به خلاصه جان خود رو از بین ببره و اقدام به خودکشی بکنه یا مثلا فرض کنیم این در این الان آب روی مختلفی ما داشتیم آب حفظه آب رو مصادیق مختلفی داره درسته؟ در این میان خلاصه اینجا ما الان فرض کنیم آب رو یکی از مصادیق اون حفظه بوزهه خب آیا زن حق داره چون این کاری بکنه؟ خیر در این مورد خلاصه حفظ جان مسلمانان مسلمان و حفظ جان خود بر حفظ آب روی فرد در سیانت از بزع خود میتوانه بلکه باید مقدم بشه خب حتی اینجا بگیم مثلا گناه زنا نگیم اینجا حالا یه بحثیه در واقع حالا با نگاه عام داریم یه کسی برای پرهیز فرد مسلمان نمبتلا به گناه قبلا انجام داده مبتلا شده یا فردی که میخواهد از اون پر از این موارد پرهیز کنه نمی توانه دست به خودکشی بزنه چرا؟ که حفظ جان و حفظ نفس حفظ نفس واجبی با اهمیت فراوان غیر قابل مقایسه با اون موارد خواهد بود و فراتر از سایر خلاصه از اهمیت سایر موارد در نتیجه هیچ زنی نمیتونه اقدام به خودکشی کنه که مثلا در زندان در اسارت یا هر مورد دیگه یا اگر خلاصه قبلا مبتلا شده چنانکه خلاصه اگر خبری از پرده برون بیفته اگر دیگران از ابتلای فرد به تجاوز یا حتی تعمد در زنا یا دیگر گناهان خلاصه گناهان فرد خبردار خلاصه اطلاع پیدا کنند این امر بهانه خوبی برای این مقوله نیست رست بهانه مورد قبول شارع نیست مثالی که برای آبروی در اقتدار برای شوخی بس کنیم فرض کنیم اینا آدمایی که سیبیل کلوفتی داشتن و خانی بودن و اینها سیبیل برای اعتبارهای غیر حقیقی چونان که خلاصه اعتبارهای غیر حقیقی اعتبارها و جایگاه های حقیقی یا توهمی برای برخی خلاصه آبرو آبروی ایجاد کرده اما اونها نمی توانند خلاصه برای سیانت از این موارد دست به خودکشی یا کشتن دیگران کنند مثل این جاپونی ها که بیان هاراگیری بکنن بگن که ما آبرون رو از بین میره خب پس بنابراین این مثلا سیانت از خلاصه این آبروی خیالی یا واقعی نمیتونه خلاص من بشه پس تضامون به این دو دو تاست این مثال رو خواستم عرض کنم که موارد اینطوری هم ما داریم در اینجا حفظ آبروی حفظ آبروی خود یا نهاد بگیم آب روی شخصی و حقوقی یک فرد هم میتوانه مقتلا به تزاهم شود اینجا دیگه وستگی داره در برخی از موارد حفظ آب روی شخص اهمیت بیشتری داره در برخی از موارد همچیه خلاصه سیانت از آبروی حقوقی شخص اهمیت فراتر از آبروی شخصی و حقیقی فرد داره خب بستگی به من البته نیاز به نیاز به بررسی بیشتر داره خب اما برگردیم این بس پس این بحث نفس با آبرو شد بله نقطه اساس در بحث بله خواهش شکر. گم دیگه تزاهم نیست بین یک فرد و جامع بیشتر دلیل داره تزاهم دا که دلیل, با بلا با بلا بلا دلیل با هم دلیل دلیل برا نه تزاهوم. در در هر دو حکم دلیل دارند این جور که دل ندوشن دو حکمی هستن که توان امتصال اونها با همدیگه وجود نداره این بحث هر دو هم دلیل دارن در, در تعارض هم ما دو دلیل داریم مون تا محتوای اونها یه نسبتی داره اونها در عالم ثبوت قابل جمع نیستن یا شاره رو کرده یا اونها یا گفته بکشید یا گفته نکشید ولی در عالم تزاحم ما دو تا حکم جدا داریم وجوب خلاصه نجات غریق این حکم مستقل دلیل مستقل داره و حرمت رفتن از زمین دیگران غصب زمین دیگران اینم دلیل داره ولی ما مجبوریم یک مستاق رو خلصه انتخاب کنیم یا این یا اون یا هر ارتکاب مثلا این مجبوریم یکی رو نادیده بگیریم این حرمت قصر رو نادیده بگیریم بریم نجات غریق پس هر دو دلیل دارن خب حالا اینجا فرد آب روی شخصی داره تضاهم بین حفظ آب روی شخصی و هم حقوقی حقوقی خود فرد خب این هم یه نمیسه خب حالا بحث بعدی پس اینجا ما در کلان در بحث چی بودیم تضاحم بین حفظ جان و حفظ خلاصه اعتبار حفظ حالا اعتبارم تو مفهوم شناسی می توانیم وارد بکنیم بگیم که آها مفهوم آبروی مفاهیم نزدیکی هم داره اونا هم جدا در واقع مفاهیم مرتبط با آبرو مانند جایگاه اعتبار و دیگر موارد خلاصه می تواند مد نظر قرار بگیره ما در مجموعه داریم حال کل اینها رو با تسامح می گیفت ببخشید جسارتان لحظه این بحث آبروپ پس موارد مختلفی داره مفاهیم دیگه مانند خلاصه جایگاه اعتبار و موارد دیگه میتونه خلاصه نشان دهنده مفهوم توانند حکایت از محتوای ارز و آیا آبرو بکنند خلاصه اینها یه یک کمکی هستن خب اگر پس ما یه تضاحم بین نفس و آبرو داشتیم و یه موارد هم خلاصه ما می توانیم اضافه بکنیم مسادیق مسادیق اجتماعی ارز به هر حال کلیدیه خب حالا ما آیا می توانیم یک تضاحم مستقلی هم داشته باشیم بین حالا به غیر از نفس مصلحت نفس با ارز گفتیم یک تضاحم بین مصلحت نفس با مصلحت نسب یک مقوله تقدیم صحبت از تقدیم مصلحت نفس بل مصلحت ارز بکن... نسب بکنیم ارز جدا بعد مقوله مستقل دیگه هم به عنوان مصلحت ارز فردی با ارز چی؟ مصلحت ارز اجتماعی یا ارز حکومت داشته باشیم اینم یه معقول است پس دو تا ارزم میتوانیم این رو میذاریم بعدا صحبت کنیم یه مقداری مسلحت نفس با مصلحت نسب رو هم بگیم که یه طرفش هنوز ثابت باشه مصلحت ارز و اینا رو جدا عرض خواهیم کرد مصلحت نفس بر مصلحت نسب این مقوله بود که حالا مطالبه دوستان هست دو تا آوه رو اون رو بعد ان جدا عرض کنیم که ترتیب این بحث هم کمی حفظ بشه ما از یه طرف مصلحت نفس داریم نفس چه کسی است نفس محترمی مانندی چی نفس مادر جان مادر در, موارد در واقع سیانت از نفس محتمل جان ماامت در برخی از موارد میتونه با سیانت از مصلحت نسب یا بگیم مصلحت بگیم جنین سلام علیکم تضامن پیدا کنه در واقع من پایان کلاس وقتی بله. این نمونده این باشه منو سرنشات استیک مت میونه ولی سوال راه ساختن یه قواعد فرعی قاره فارغ از اهداف و حکومتی یه قواعد فقی راهش چیه آیا مثلا یه کلیاتش از زبان نبی اکرم اومده خود قواعد فرعی استکشافیه یا نه یعنی ای ایکسشفنتیز یا نه توریدی خود میتونیم توریید به این بساطین رو شوب این کنیم به این الان این توضیح ما دو تا بحث الان داریم یه بحثش رو که به سراحت بحث شما برمیگرده به یه صورت کلی اون جلسات اول بحث کردیم شاید چند جلسه هم بحث کردیم یه بحثش تصویر تضاهمه شاید یه مقداری من الان توقف من بله. تمرکز بحث رو دارم تو تصویر تزاهم ها میذارم تزاهم دست ما نیست دست عالم خارجه دو امر با هم تنافی امتصالی پیدا کنن یه جایی ما داریم این رو بر میکنیم اما اون فرمای شما که ما خودمون چه کار کنیم برای استیاد قاعده همون اول ما عرض کردیم با روش بشناسی بس کردیم این قسمت خب طب طب طب طبیعتا دشواری زیادی داره اگر ما بخوایم بپردازیم قاعدتا اونی که هست اصالت با تصریحات یک قاعده است یه قاعده تصریح شده باشه اگر سریح پیدا نکردیم مرتبه بعد میایم سراغ ظهورات که یه مشکل عمده که ما داریم اینجاست ظهورات دو طرف اطلاق دارند اگر تصریح بود که آقا در تزاهمه مثلا بعضی از این مواردی که اینطور پیش می ممکن است تصریحاتی ما پیدا کنیم میگیم آقا فرض کنیم اقا جان مادری با جان که دیگه تتظام باشیم. ممکنه فرض کنیم روایتی پیدا کنیم یه جا سریح باشه. و صحبت می که آیا اون مورد به درد جای دیگه هم میخوره یا نمیخورره اطلاق گیری بکنیم از این حث که تعمیم لاقی بدیم. یه موقع اصل مسئله است که یک طرف تصریح نداره اون طرف تصریح داره یا دو طرف تصریح ندارن ظهورند. باید بریم ببینیم اون ظهور اطلاق دارن یا ندارند. و اگه نبود استلزامات بد روش های اگر به حجیت برسند که ما تو این موارد خیلیشو عملا نپرداختیم و طبیعتا ما در تصویر مسئله با این معقوله کار داریم که خلاصه ما بتوانیم استکشاف بکنیم اون قاعده رو اما تلاش ما الان اینجاست که تصویر مسئله کنیم یک جاهایی هم وجه ترجیح رو برجسته کنیم بنابراین در این قاعده تقدیم مسلحت نفس بر مسلحت نسب و حفظ جان خلاص آیا جان مادر باید مقدم بشه؟ یا مسلحت جنین این هم یه فق... مقوله که دیگه زیاد هم به بحث پرداخته شده اه... اه... حفظ جان مادر اه... خلاصه مصداق برجسته است که محل وجه فقهی بوده و نوعا اینجا شاید بگیم ترجیح داده شده واقعا اگر اه... خلاصه اه... تزاهم باشه با سیانت از مسلحت نسب اینجا ترجیح داده شده به صورت موردی طبیعتا معمولا خلاصه فوقه ها به صورت سخت گیرانه اقدام به این مقایسه می کنند و ما این رو می توانیم مد نظر قرار بدیم زنی بزنگی ها در تقدیم مثلت نفس بر مثلت نصر از صادق مختلفی میتوانیم ما پیدا کنیم. یک مورد برجسته و متدابل بحث سیانت از نفس مادره از جان مادر ببیندان نفس محترم اگر تظاهن پیدا بکنه با حفظ جنین و خلاصه بقای آور جنین کدام مقدر من باقاها به صورت سخبیرانه در بحث از تضامن نفوس خلاصه به بحث میپردازن اما اگر جان مادر در خطر قرار بگیره تا قدونت زیادی تا حفظه جان مادر رو مقدم می کنند و بنابراین اگر این منظر رو بگیریم باید مستندات این بحث به صورت خاص در نظر گرفته بشه تا جان مادر خلاصه مقدم میشه و جندید بویژه اگر در فضای عدم رود روح در نظر گرفته بشه متفاوت خواهد بود بنابراین این یه مورد خواسته اگر فضای مادر و بچه رو در نظر بگیریم خوب یه شرایط خواستی هم اونجا حاکم خواهد بود این بحث حفظ مثل اولاد حفظ جنین. اما میتوانیم حلوس حفظ جان در واقع جنین نابر از روح تقدم نداره تقدمی بر حفظ جان مادری که بلاسه دارای روح هست نداره این یه مورد خاصی اما جان مادر خلاصه در تضاهم با حفظ جان جنی تقدم خاص خودش رو داره اما اگر بگیم حفظ مسلحت نسل این که حفظ نسل به صورت کالی مفهومه حفظ نسل ناظر به سیانت از جمعیت اسلامی می توانید خلاصه لحاظ بشید و مفهوم فراتر از خلاصه فرد باشه. در واقع این مفهوم تا حدود زیادی فراتر از نگاه فردی جای ترخ و بررسی داره به تعبیر دیگه این حفظ نسل در مباحث مربوط به فرق جمعیت اهمیت کلیدی داره و محدود به یک فرد نیست چنان که دیگری در بحث تزاهان در این تزاهم مفاهیم متعددی مانند محدودسازی نسل، انقطاع نسل می توان با سایر موارد تزاهم بیدا کنیم، با سایر حقوق و تکالیف شرعی قابلتر هست و جای تعمل گسترده داره بنابراین ما با یه مفهوم شخصی مواجه نیستیم در, در عرف رایج فقهی این تظامن محدود به در واقع موارد محدود و فردی مورد توجه قرار گرفته اما با تغییر فضای جامعه، جامعه اسلامی و فضای جامعه بشری جای طرح اون به عنوان یک بحث فراتر و فراغیر خلاصه وجود داره و خب، در موارد سنتی این سیانت از نفس مادر مثال رایجی است چون موارد خلاصه متعددی متعددی از سیا... تضاهم مزبور خلاصه قابل تصویر هست به طور نمونه همین سیانت از جان مادر ولی در سایر موارد ارتباطش با خلاص نسل ضعیفتره. دیگر مصادیق این تظمون باید خلاص در واقع ارتباط روشنی با حفظ نسل و نسب انسانی خلاصه داشته باشند. بعضی موارد خلاصه به صورت غیر مستقیم بسیاری از تزاهم نوین به صورت غیر مستقیم به سیانت یا مقابله با ازدیاد نسل و استمرار اون ارتباط دارند جای خلاصه بحث هست خلاصه بسیاری از این ت ها جای خلاصه مستقیم ارتباط مستقیم با این ممکنه نداشته باشند اما نمی خلاصه بحث رو تصاق ت رو به موارد سنتی محدود کرد. محدود به موارد سنتی و با ارتباط مستقیم بالاه محدود کرد. بنابراین اینجا جای طرح بحثش هست و ما می توانیم این موارد رو مد نظر قرار بدیم. که بلا سیانت از جامعه سنتی به بسید به جامعه حفظ جامعه اسلامی در فراتر از اون موارد سنتی به هردازه این مقوله جدیست که ما ارتباط رو معلوم کنیم با روشن شدن ارتباط بسیاری از موارد با مقوله جمعیت و کنترول زمعون خلاصه میتوان مصادیق متنبهی از تضاهم بین حفظ نفس و حفظ نفوس با حفظ نصر رو یادآور شد و خلاصه شناسایی کرد ما تو بحث های پزشکی به هر حال خلاصه بحثایی داریم به صورت غیر مستقیم به این مقوله میبردازه الحمده اینا رب العالمین